بخش دفم دیما هست و خانه نشینی اگر امان بدهد خیابان ها هنوز جادو جنبل دارد چند روز توی سیسی و بیمارستان دیما ماندم تا شما دوتا به دنیا آمدید نکند من اولین زن تاریخ هستم که بچه هاش توی سی سیسیU به دنیا میآید. نکند اسمم را باید در کتاب رکورد گینس بنویسند. قلب زنها گاهی اوقات می تواند رحم بشود مثل قلب من. موقع اکو صدای قلبتان را می شنیدم. مثل همه مادرها که دکتر موقع سونوگرافی بهشان می گوید گوش کن؟ این هم صدای قلب بچه. هنوز خیلی مانده شما این چیزها را بفهمید. کاما؟ دست دهانت نکن. بگذار یاما بخوابد. همیشه خانه که هستیم یکی از شما دوتا خوابش میبرد و آن یکی بیدار میماند. هیچ وقت شما را با هم توی خانه بیدار ندیدم. بابا حامد کم کم پیداش میشود. آن وقت چهارتایی با هم میرویم گردش. کاما، تو پتان را که یاما انداخته بود خانه همسایه پس گرفتید؟ تو همیشه چوبه ندانم کاری های یاما را خورده ای. آخر چرا نرفتی در خانه همسایه؟ باید میرفتی؟ زنگ خانهشان را میزدی و معدبانه معذرت میخواستی و توپت را پس می گرفتی. نکنت چون یک بار با یاما زنگ خانهشان را زده بودید و فرار کرده بودید نرفتی؟ واقعا خجالت آور است. تو چرا همیشه با طنا یاما ماتر چهاه میرو؟ تازگیها داری بچه بدی میشوی؟ شوی. که توی خیابان بزرگ بشود؟ از این بهتر نمی شود. از فردا حق ندارید بروید توی خیابان. خطرناک است. تازگی ها از این دست گل ها هم که آب می دهید. خودم هیچ وقت نتوانستم از خیابان دل بکنم. ولی نمی گذارم بچه هم به سرنوشت من دچار بشوند. می بینی کاما؟ همین حالا که دارم اینها را به تو می گویم. روبروی پنجره ایستادم و زل زدم به خیابان. گوش می‌دهی چه میگویم؟ یا سرت مشغول قطار برقی و ماشین است باورم نمیشود این چار پنج ماه اینقدر قط کشیده باشید که بتوانید زنگ خانه همسایه را بزنید. نمیدانم، باید به شما افتخار کنم یا تنبیهتان کنم. کاما، کجا میروی؟ میخواستم بگویم بیایی کنار من بیستی تا چیزی را که از پنجره دیدم نشانت بدهم. از یخچال که آب پرتقال برمیداری، یادت نره و در یخچال را محکم ببندی. دفعه پیش در یخچال را نبسته بودید. جای یخی برفک زده بود. امشب فکر میکنم برف ببارد توی آشپزخانه هستی برای من هم آب پرتغال بریز. باید قرص قلبم را بخورم. کاما از دستت رفت. حیف شد ندیدی. خانم همسایه همین الان با سگش بیرون رفت. همان سگ خال خالی که خیلی دوستش داری صدات زدم ولی نیامدی چرا اینقدر معطل می کنی وقت قرصم گذشته کاما یا یاما بزرگ که بهشان می گویم هندوستان کجاست؟ هندوستان اینجاست. توی قلب من. هر روز می روم هندوستان را بر گردم. لیلا جاهد شبه قاره درون خودش دارد. من به سفرهای درونی اعتقاد دارم. و کاما و یاما را از این سفرهای درونی به شبه قاره آوردم کاما خدای عشق هندوهاست هست و یاما خدای مرگ. مهپاره این را به من گفته شاید محباره شاید هم مسافری شبیه محباره در همان سفرهای درونی. قلب من شبه ای فقیر است ولی بمب اتمی دارد بمب اتمیاش هر لحظه ممکن است بترکد اگر فقط یک بار قرص سفید قلبم را نخورم بمب اتمی میترکت. تنگی دریچه قلب مادرزادی است نکند کاما و یاما در قلبشان مثل من تنگ بشد؟ به دنیا که آمدند، دکتر محسنی چیزی نگفت. تنگی در قلب زیاد هم بد نیست. عوضش بچه بزرگ که شدند در قلبشان یک شپ قاره می و مثل من هر شب به سفرهای درونی می روند. مگر خیابانهای تهران ایستگاه آخر سفرهای درونی من نیست. من که دیگر دست مارکوپولو را هم از پشت بستم. کجای دنیا را ندیدم. با آنکه پام را از تهران بیرون نگذاشتم. خیابان برزیل، میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، کوچه بیرلن، چارا استانبول. پسرم کاما، پس چی شد اینا پرتغال؟ رفتهی ای پرتغال را از بالای درخت بچینی؟ حتی دمای بدنم با نام خیابان ها عوض می شود. گاندی با آن که شمال شهر است، شرجه شرجی است. استانبول مرکز شهر است، ولی معتدل است. دماوند همیشه خدا زیر صفر است. این خیابان بازیها نبود که قلبم را به این حال روز انداخت. این عادت خیابانبازی از کجا شروع شد؟ از وقتی که هواپیمای حامد پری دستت درد نکند کاما. قرصفیده را از کنار چرا خواب می دهی به من؟ کاما، وقتی بابا حامد آمد، باید بروی اتاقت. در را هم ببندی. میخواهم با حامد خصوصی حرف بزنم. مسئله مهمی پیش آمده. اگر قول بدهی به یاما نگویی، بهت می گویم. نه اینکه فکر کنی دارم بین تو و یاما فرق میگذارم ولی یاما مثل تو باهوش نیست و خیلی چیزها را نمیفهمد. شاید روزی هم حرفی پیش بیاید که آن را به جای تو به یاما بگویم. کاما من دارم دوباره بچه دار میشوم. تو را به خدا اخم نکن. قول میدهم یک ذره هم از مهر و علاقه هم به شما فسخله ها کم نشود. من مثل همه مادرها شما را قبل از آنکه به دنیا بیایید دوست داشتم. قرار است یک خواهر به خانواده هنوز پا نگرفته ی ما اضافه شود. کاما باورت می شود؟ دارم جنینی بیس ساله به دنیا می آورم. باید به دکتر محسنی زنگ بزنم. بپرسم وضع حمل توی این سن و سال و با این ناراحتی ارسی خطرناک هست یا نه؟ کاما، تو خیلی کوچکی و نباید حالا این چیزها را بدانی. ولی این زایمان طبیعی است. به همین خاطر شاید رحمم افونت کند و دکترها مجبور بشوند رحمم را در بیاورند. البته این اصلا اشکالی ندارد چون من یک رحم دیگر توی قلبم دارم. همان رحمی که شما فسقلی ها ازش بیرون آمدید. اسم خواهرتان نداست. بابایی تلفنی گفت ساعت پنج می آید خانه و الان ساعت یک رو به پنج است. بابایی هیچ وقت دیر نمی آید. آه خدا یعنی حامد به حرفام گوش می دهد. و حس و حالم را می فهمد. اصلا چی می وقتی از مهمانی حامد برمیگشتیم می گشتیم؟ ندا همین جوری هوا به من اعتماد نمیکرد و راز دلش رو به من نمی گفت. تقصیر زبان فاموندی خودم است. آخر مهمانی بی مقدمه در و گفتم امشب آجان سخت گیر می آید. من میرسانمت وقتی از یوسف آباد آمدیم توی خیابان ولی درست روبروی بیمارستان دی، ندا زد زیر گری و شرکت یک ریز حرف زدن. درست روبروی بیمارستان دی. دوباره بعد از چند ماه فراموشی، یاد سی سی و مانیتورینگ و آن تا سی می افتادم که به سینه و شکمم هم کرده بودند. خودمانیم جناب استاد نجات. خوب هوای شاگردانت را داری. عالم و آدم روی سرت قسم میخورند. و حالا تو؟ نه. این وصله به حامد من نمی چسبد. سال است او را می شناسم. سال مگر کم است. سامان و ندا 20 سالشان است. وقتی که سامان و ندا به دنیا آمدند، من و حامد دور از چشم مادر جان می رفتیم حسینیه یه ارشاد. جلسات تفسیر نهجل البلاغه. حامد، یادت هست سیله در بند؟ جلو حسینیه را آب گرفته بود. و اگر مادرت سوار شیفرولت سر نرسیده بود ممکن بود. مادرت ما را نجات داد. اما بیمارستان دی و اتاق عمل و آنجیو گرافی یعنی این من بودم که همه اینها رو پشت سر گذاشتم. اولش حتی میترسیدم وارد اتاق انجیو گرافی بشوم. برایم مثل اتاق وحشت بود. دکتر محسنی نتایج آنژیو و ایکو را دید و گفت قلبت حتما باید عمل بشود. نارسایی قلبت شدیدتر شده. عمل قلب باز دنده های را میشکنند تا به قلبت که آن وسط تالاب می میکند برسند و جای دریچه تنگ آورد دریچه فلزی میگذارند. استخوان ها باید ترمین بشوند فلز باید با قلب سازگار بشود میروی بخش مراقبت های ویژه قلب بین تو و پیرزن بغل دستی پانلی پلاستیکی هایل شده از اینکه حال و روز پیرزن فرق چندانی با تو ندارد لجت میگیرد. حامد نمیتواند هر روز بیاید سی سیو و تو کتاب میخوانی. حامد برایت یک کتاب قشنگ با جلد قرمز میآورد. محباره داستانهای عاشقانه هندو. هندوستان درون تو شروع به رویدن میکند و طی چند روز چونان پرشاخ و برگ می شود که مجبور می شوی از پرستار بخواهی تو را دم پنجره ببرد و پنجره را برای چهار تاغ باز بکند. پرستاری که هر روز می آید تا علایم حیاتیت را چک بکند. پرستار میگوید: گوید باید از دکترت اجازه بگیرم. دکتر محسنی اجازه می دهد. پس عمل قلب باز موفقیت آمیز بوده. سیم‌های مانیتورینگ را می‌توانی روزی نیم ساعت از سینر جدا کنی و بروی پای پنجره و به هندوستانت فکر بکنی. روزی یک بار محباره را تمام می‌کنی. از پشت پنجره خیابان توانیر و ولیاس را می‌بینی. خانهت فقط پنج دقیقه تا بیمارستان دی فاصله دارد. حامد کلید خانهت را دارد. روز آخر سیسیو حامد میآید اینور این پانل و میگوید این سامان است. همان پسر سر به هوایی که برایت گفته بودم. پرستار کافه سرمه فشار خون را به بازوت وصل می کند. حامد میگوید امروز با سامان رفتیم و خانه را تمیز کردیم. چه گرد و خاکی روی وسایلت نشسته بود. سامان پسر سر به است. چشم سبز و خوشقیافه به مانیتور نگاه می کنی. چهار خط رنگی دارد. سبز، سورتی، قرمز، آبی. خط اول بالا و پایین می رود و سه خط بعدی صاف صافند. خط اول موج دارد. دوستداری تهران بندرگاه بود و صدای امواج را می شنیدی. حامد و سامان خداحافظی می کنند. سامان مثل حامد حرف میزند. درست مثل حامد. می شود تو چشمهاش خواند که برای خودش خوابهای خوبی دیده است. دوربینش روی شانهش است. قبل از اینکه از سیسی و بیرون بروند، از سامان میپرسی. همیشه دوربین همراهت است؟ همیشه که نه، فقط وقتهایی که با استاد بیرون میآیم. استاد سوژایی جالب نشان آدم میدهد حامد تشر میزند چرب زبانی ممنون. می و می خدا حافظ. اصرش میروم توی بخش. چیزی به ترخیص نمانده. حالا دیگر حامد مهمان هر روز من شده. تازه دارم به جایگاهی که توی روح هم داریم پی می برم. پنجره سیسیو را از پنجره بخش بیشتر دوست دارم. دلم برای پیرزنی که شبها ناله میکرد تنگ شده و برای الکتروت هایی که به سینهم وصل بود. دکتر محسنی به من سر میزند. هنوز مثل حالا با هم سمیمی نشده ایم. حالتان خیلی بهتر شده خانم جاهد. عمل سختی پشت سر گذاشته همسرتان پیداست خیلی دوستتان دارد. به دکتر محسن نمیگویم حامد شوهرم نیست. آقای دکتر، حامد یک مفهوم است توی زندگی من و خیلی بالاتر است از مثلا شوهر یا برادر. محباره توی سی, سی جا مانده است. پرستار محباره را برایم می آورد. اولین شبی که توی بخش میخوابم کاما و یاما متولد می شود. هندوستان بی درد و بی ماما میوه میدهد. طبیعی طبیعی. از پرستار میخواهم من را ببرد کنار پنجره. چند وقت از توی خیابانها راه نرفتم. خوشحالم که از این به بعد کاما و یاما هم با من میآیند پیاده روی. آبران بی اعتنای دور برم حواسشان نیست که توی خیابانهای شهرشان گرده اشق و مرگ میباشم. شبه قاره، شبها ها، خیال پردازی، قرص قلب قبل از ترخیص، باید دوباره بروم اتاق وحشت دیگر نمی ترسم میدانم که حامد مال خود خودم است من و حامد مال همدیگریم دیگریم اصلا ملک خصوصی هم هستیم و ورود افراد متفرق ممنوع جانمی بعد از بیمارستان با حامدم میروم ویلای دماوند. حامدم با من در خیابانها قدم میزند روز ترخیص سامان هم سرزده میآید با حامد هماهنگ نکرده است میگویم میخواهم تا خانه پیاده بروم امروز نه لیلا جان حالا خیلی وقت داریم ولی اگر بخواهی می توانی تا خانه رانندگی کنی من سوار ماشین عجیب و غریب لکنتی تو نمی سویچ را نشانم میدهد. سویچ ماشین خودم است. الحق که هنرمندی. من و حامد جلو می و سامان عقب. تابستان دارد نفسهای آخرش را می کشد. شهری ماه تهران جان می برای سفرهای درونی. بی خیابان خیابان‌های تهران هستم. فرمان ماشینم انگار نرمتر شده. من رو کی میبری آتلیه مستر نجات؟ از عید به اینور پایم رو نگذاشتم توی ملکه خاکستریت. هر وقت که تو بخواهی عزیزم. حامد پنجره خانه را باز می‌کند. خانه خوب است. خانه روشن است. خانه پرده های سفید دارد. خانه خاک مستعدی برای روییدن هندوستان دارد. نمیدانم به حامد بگویم که آن پیرزن توی سیسی سی و من را یاد مادرجا میانداخ یانه. به حامد نمیگویم. حامد همیشه در مورد گذشتهاش سکوت سکوت میکند. کم حرف است و چیزی بروز نمیدهد. اما امشب فرق دارد. باید حامد را راضی کنم تا رو در رو با ندا حرف بزند ساعت هنوز پنج نشده است